من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین علی سیدنا رسول الله و الطاهرین و, و, و اللهم یا که سبب هر رو به عنوان اختلاف دافع و قابض معلوم شیخ مصلح فرموده در اصل اصحاب هم بعد از ایشان بزرگانی که بودند تعلیقاتی اله قبولاً و در تفصیلاً در کلام مصلح فرمیدند هر دوم ول و دع دافع و انها رشوتون او اجرتون علل محرم و در قابض و کونها هبتاً هستند پس اینجا اختلافشون در خود مطلبه یکی میگه هبت یکی میگه سحیح میگه نه یا اجاره محرم بوده این فهمدن اجاره محرم مبنید برای اینکه اصل اجرت برای قاضی حرام نباشه چون این رو ما مصفصلاً متعرض شدیم مصفصلاً نبدار بحث خودمون که آیا اخذ اجرت برای قاضی حرام یا نه مراد از احضر اجرت این است که دو نفر بیان پیش ایک مشتهه تقییه جامعه شده بیان ما پول بست میگیم قضاوت بکن پول بست نهی به نفع امر اصلا پول بگیم قضاوت بکن این استداهم بشن هر جور قضا یا اجرت رو قضا این رشته نیست مسلم این رشته نیست چون رشته پولیست که به غازین نه به نفر یک خودمشون پک بکنه نه میگه اصلا یا تبدیل آقایان همین که شما متصدی این ملصف بشید، یعنی متصدی بشین این قضاقه که دین ما انجام برید اون دو طرف هم مساوی میگن این هم ده هزارت میگذاره. هم میگذاره اونم 10 ده هزارت هم میشه بیست هزار هم. شما بگید دین ما دو نفر حکم بکن هر که این مسئله ما تاریخش هم توضیحشون داشیم آقایان غالبا جهت فقهشون این مسئله از عهد صحابه مطرحه. و از اهل سنت نرد شده که عجرالغازی رو عمر اجازه نمیداد. همین مطلب همه شیعن نرد شده. خیلی عجیبه. با که از و مؤمنی توضیحاتش سابقا از کردید. به لحاظ علمی هردشون سردشون ضعیف هست. اما از اهل صحابه مطلح شده این عجرالغازیه. قجرسالغازیه. مطلب دیگری که باز همون زمانه هایی که بلتر مطلح شده رزقالغازیه. ده کل مال به وصول او بده اون غیر از اجر قاضیه و اگر ما فرض کنیم که اجر قاضی حرام باشه ایشون گفت اجرتن علی المحرر یا اجر قاضی را حرام بزنیم این بحثم مطرح کردیم که آیا اجر قاضی حرام هست یا نه عسکری دو نکته یک یکی خاصه یکی هم به طور کلی گفتن چون قضاوت کردن بر او واجبه این بفرمونن با قضاوت بکنه هر من داره پول بگیه اخذ اوجت در واجباته این بحث اخذ اوجت در واجبات رو برای بعد فعلا فقط نصوص خاصه رو متعرض شدیم و گفت این دلالت نداره انصافا نصوص خاصه واضح سریح حجه برای این مطلب نداره این اما حالا اگر قاری شدیم به حرمت این یک یا بگید اجاره کرده قاضی رو این شرط موردشون اجرت المهر هم باشه به قاضی پول داده نرشه گفته آقا من با تو قرارداد می‌بندم که اگر پرونده به اینجوری به نفع من بکنی 100 هزار تومان بهت اونجوری بکنی 200 هزار تومان اونجوری بکنی قرارداد مالی باش می‌بنده که اگر پرونده رو در این حد به نفع من قرار بزنی با این حدود پول‌های متعدد این اجرت قطعاً باطله این اجاره قطعاً فاسده تو شو و دل قظر قابزن یعنی با قاضی، کوونه ها حلتتا صیح هست این خ جواب. من هم اونشه در افتضار اینجا فردان احتله نهودهزاره یعنی ح با بازی باشه با اساس و صح سابقرم در بحث دیروزان حل کردیم از سات و صح الان هم صاب بم. چون اون میگه رششی بوده حرام، حجرت حرام، ادام میکنه عمل محرم بوده قاضی میگه صحیح بوده صحیح بوده. پس اصالت سهن یه حق با قاضی است اون باید, باید بیانه بیانه لن الامره یدور و بین الهبت صحیحه ولی اجارت الفاسده یا بین رشوهی که حرام بعض خود اینشون فرمه یه تمالو لعدم که نه حق با قاضی نباشه. البته این خوب دقیقتا رو بعد انتوضیح میدن بنابرای مقنی اول که هبه صحیح باشه نتیجه شد مخابم اعزوان یک اگر تلف شده زامن نیست دو اگر تلف نشده عین مال باقیه خود هبه جایزه رجوع مگر در موارد خاص مثلا قاضی رحم ایشونه پسر اموی ایشونه برادر ایشونه اگر ثابت کردیم که هر باقادی صحیحه این را نیمتونه برگزم هبه به زیره هم لازم رایه و ها که اگر تخرب شده باشه در از اینه که اگر هبه باشه نتیجه اینه که در یک مواردی میگیم آقا این مال رو برگردون در یک موارد تلف کسان زامن نیست برای ارجاعه هم در مواردی ارجاعه هست نه در کل موارد این نتیجه و یحتمل على عدم که نه حق با قاضی نباشه از لا عقد مشترک هنه این هنه با صورت اول چون در صورت اول هر دو میگفتن هده دافه میگفت هبه فاسد ایش میگفت هبه سعیب اینجا نه یکی میگه هبه یکی میگه می اجاره فاسده لا عقد مشترک هنه اختلف آفیس حقی و فساده فد او منکرون لعصل لعقد انذی از دریه القابض لال سحطی. پس در اینجا این آقا میگه اون عقدی که تو میگه به صحیح واقع نشده فیوحلف فیوحلف یحلف هم میریسن یوستحلف هم میریسن اگر از باب به استفعال بود به سیغه مجهود بخونی یوحلف هم میریسن لکن یحلف هم عدم وقوعه. این نتیجه اینه که این به اصطلاح رشته حساب میشه طبق این نتیجه اگر هم تلف شده باشه زامنه این فرقش با صورت اول اگر اون مال تلف شده قاضی باید بدلش رو مثلش یا قیمتش رو رد بکنه اگر هم موجوده کلن باید رد بکنه چون هبهی سعیه نیست رحم باشه فرقش با امول اول روشن بشه در نتیجه فهمش وقت در اینجا این شبه پیش میاد که شما گفتین اددافعون منکرون لعقد خب القابضم منکرون لعقد ایشان قابضم یه عقد اجاره فاصل نیست و ما این توضیح رو از کردیم ما در باب قضاوت به طور کلی خب دقیق رو ما دو باب داریم باب مدعی و منکر داریم یا باب دعوا یا ادعا داریم و باب تداعی داریم در باب مدعی و منکر یکی مدعی است یکی منکر من، منکر اصلا میخواد وظیفه مدعی اقامه بینه است این در باب مدعی در باب دیگری که باب تداعی است نه در باب تداعی اگر اگه یکی بیان داشته باشن که بیانش مقدمه به الله هر دو قصد میکنند تهالک در باب صدایی تحالفه و بعدا آثار واقعی خودش کلو مادنی یا دو قسم، باب صدایی فرش با باب مدعی و من که کجاست اگر محور نزا یکی باشه سلب و ایجاب باشه میشه باب مدعی و من که اگر محور نزا دو تا باشه میشه باب صدایی این ذابطه باب قضاوت مثلا این آقا میگه حبه واخر شده اون میگه نشده این میگه شده نشده این میشه مدعی و منکر حق با اون کسیست که میگه نشده اما اگر محور نزار دو تا شد مثلا قاضی میگه این حدیه هدیه صحیحی بوده منکر میگه نه هدیه نیست اجاره فاسدی بوده پس هر کدوم از دو طرف هم مدعی هم منکر این رو استداره هم میگن بابه فدایی مئیار در باب صدایی محور نزا دوتا است در باب مدعی و منکر محور نزا یکی است این خربش فرق, فرق کلکیش و اگر باب مدعی و منکر شد یکی باید بیانه بیاره یکی دیگه قسمه یکی قولش محافظ باید یکی قولش مخالج باید اما در باب صدایی هر دو هم مدعی هم منکره یعنی قاضی میگه این هدهی صحیحه بود و اجاره فاصله نیست اون طرف مقابل میگه اجاره فاسده هست حبه سیهه نیست خب در اینجا مرموم شیخ چی فل فلدافه ببینید منکرن لعصل الارد الَّذِي يَدَّعِيهِ الْقَابِهِ منکر اصل الارده خب اینجا این سوال پیش میاد چرا مرغوم شد، اون وریش آن نفرمو، اینجا ابادی شد، اباهام داره. فدا او من کردم. لحاظ الاعض ال الذي در يه القابد يه ترس و شيخ اورد، بعض فرندس ولیتا حالا من موضه تداوي کمال آيا خوا، توضي هم نداز مرغوم چرا اینجا از مورد تداوي نیست؟ ما اینکه به حسب ظاهر افتاده ما این رو مورد تدایی میدینیم ظاهرش این طور بگه. این میگه هده هست اجاره فاسده نیست اون میگه اجاره فاسده هست هده نیست خب ظاهرش تداییه محور یکی نیست دو تا محوره خود من فکر بکنیم که این مورد تدایی هست یا مورد تدایی نیست شیخ رضوان الله تعالی توضیحی نداده در اینجا توضیح خاصی ندادن حالا این مقضی تو هستی که ما مرحوم بررسیدی رو فکر شد از خلان که مرحوم استاد قدس الله نفسه من از این آقای عبارت ما گاهی، بعضی عبارت و خاضر نکات که از هر کتابی گاهی میخونیم این عبارتی در نسباح الفقیهشون متعرضی این بحث شدن یا ایشون هم متاسفانه توضیح ندادن این مثال تقریه همون چاپ نجاب مثل در این لرگام چاپ دیگه کردن برای برحال من از این چاپ نجاب که در لرگام افسد شده نهم میکنم در جهد یک تقریه 277 ایشون در اینجا دارن با امان صورت سالسه در کتابش اصلاف سالی در تخصیم اصلاف سالسه مهم نیست قبل از این که بارد بحث بشم اینجا یک نقطه ای واقع چون چند بار من عرض کردم چون این هم خارجی خوبی است و هم تا وقتی مشغول فکر بشین که آیین تدایی هست یا تدایی نیست که شیخ میتوان لیت مورد تدایی در این کتاب صفحه 276 و باز در صفحه 196 از همین چاپ بله. من چند دفعه از کن که مرحوم استاد اصل قاعده زمان علالیت رو قبول ندارم بعد ایشون در اینجا به یک مناسبتی در همه صفحه دیدی ساعت قبل از بحث این ما نه امیرد و علی ان خبر علالیت زعیف و سند البته سند نداره زعف مرادشون انسال ایشون ارز کردیم اولین کسی که در ما این حدیث و و اصول و همه چیز ما مرور چیز توتیه ایشون ها مرسلن ان نبی به قول نبی اصلا سند ایشون نداره میگه مراد, یعنی مراد ایشان و غیر منجه دارن بشه این, این توضیح نهدن که چرا منجه دارنیست این صاحبا نهد کردن بعدها این مشهور شده بین اصحاب لکن این فایده بده این خیلی مشکله فلا یه جوز الاسطناد و علی و قد عرفته و فی ما سبب و یه تهر یه تهر رو فی احکام زمان دقیقه فرمانه؟ اینی که من گفتم که شون قاعده علیت قبول ندارن یکی هم همینجا اگر آقا خواستن آذر سوده نه که شما همینجور سفیه دیستردادشی این رو نظر میکنم به خاطر همین نقطه ای که از حالا بیایم سره این مطلب خود ما که آیا در این صورت دوم به تعبیر شیخ اول دیگه اصلا باب مدعی و منکر یا باب تداییه چرا مرمومه استاد سرمودن؟ یعنی ایشون هم قبول کردن باب مدعی منکر؟ همزه مرموم استاد توضیح ندادن چرا باقصداری نیست لیکن اگر انسان خوب دقت بکنه این رو از کلمات ایشان در می یعنی ممکن است بگیم که مثلا شاید نظر ایشان به این بوده که باقصداری ببینید بعد از این که ایشون میگه، مرموم استاد ابتداعا از همون اول حق رو با دافع میدونن مرموم شکر گفت احتمله که حق با قابضه این اختلاف این دو بزرگوار ایشون فهمند واظاهر و غنا تقدیم و قول دافه شبیه همین کلامی که شیخ بعد غنای رو تمام نبرشن چون اینو تربیت می‌کنه لعصالت عدم تحقق الهبه صحیحت نافله. چون این آقا میگه این حبه صحیح است اون آقا میگه نیست و اصل اینه فنه ها امر و موضوع اون لحصه و نکته لطیقه شیده که ایشون حقیقه ننوشتن چون فریه هم اصلا در زنوارشون بوده این اصل مطابق است با مصب دعوام چون قابض میگه حقیقه طریعتشون میگه نیست، پس این اصل عدم کوندها هبتن نافله، این مطابقه با مصب دعوام حقیقه لوازه نیست که دیروز توزی شرح کردن فلعص فهمه ها انرون وجودی و و موضوع اون اثر اصل اصلو عدم ها حسر عدم شه خب در اینجا اون بحث پیشی نیاد اینجا از کن توضیح ندادن رضا در آن اگه مخان عبارت استاد یا عبارت شیخ رو ملتفت بشن با یه چیزی اضافه بکنن خب شما بگید یه طرف دیگه هم هست اون آقا اجاره پاسده نبوده علل اصل و عدم کونه و ها اجازه خاصده خب چه فرمودن علل عدم کونه ها به تن صحیح پس اگر علل اصل و عدم کونه و ها اجراتن خاصده نتیجه میشه باب تضایی تنظیم منکر هم اون منکر هر دو منکر هر دو مدعیان آیا خو این بحث نکردن که باب تضاییه روشن شد ما قولون گفت که که در همین خلالی که بحث خواستم رفت شک کی واقعا باب مدعی منکر یا باب تضاییه ظاهری که ما الان میبینیم باب تداییه که ظاهرش چطور شده که مرموم شیخ فردن و لیسه آدار من مرد تدایی کمالا یخبا کمالا یخبا ظاهرن که خفا داره یعنی ظاهرن که اصلا مورد تداییه به لذا هر دو هم مدعی هستن هم منکر هستن حالا قصد این ای دارن در اینجا با تحمل در این نقطهی ایشان شاید بشه اون مسئله حلقه ولات تو آرزها اصالت و عدم تحقیق رشوت المحرمه اول اجارت فاسده این نقطه فرمی یعنی چی؟ یعنی اگر این اصالت عدم اجارم جاری بشه میشه تدایی <تصفح> چی نمیشن این به اضافه بفرمزه که تا بگیشن پس اگر میخواد بشه باب تدایی با دو سا اصل جاری بشه اصالت و عدم و کم نهی علیه که قصد صحیحه این به نفع دابده ده. اصالت و عدم و کم نهی اجارتای این به نفع قاضیه اگر میخواد باب تدایی روشن شد باید هر دو بشه. اگر میخواد از باب تدایی خارج میشه که شیر خمون کمالای اخبا باید بگیم یکی ش... جاری نمیشه فی نفس روی. اِشو محال گان بالا سو اصالت و عدم تحقق رشوه المحرمه ولا قدرت اجارت الفاسده این لاق آرز این میشه نه حل دعوان نمیشه, میشه. از نمیشه. این غیر از تلاز اصلا نقطش این چون عین دعواست نه به دعواست روشن بشه دقیق بکنی پس این نکته فنده نکته هم فند رو ایشون اینجوری برموزن نگفتن چرا مورد تلایی هستانن نکته فند اینه اگر اصالت و عدم کونهی اجارتاً فاسده جاری نشه میشه تلایی اگر اصالت و عدم کونهی اجارتاً فاسده جاری نشه میشه با مدرگون که ایشون چهر نمیدن خودشون این چهر بنده سه بنده پس این فسته های باب تدائید یا باب تدائیش ریشه پیدا کرد ریشه چی نگی؟ دو تا اصل جاری میشه یکی که کنیفن ولا تو آرزه ها اصالت و عدم تحقیق ال المحرمه اول اجارت الفاسده لعنه همان لا اثر اله همان این دو تا اصل اثر ندارن چرا؟ و این نمال اثر که نفی زمان باشه متقتبان علا عدم تحقق سبب ناقل مهم اثر برچی بار میشه در این که آیا هبه تیه واقع شد یا نشد سوا اون تحقق معروشه اون من الاسباب الفاسده هم در میتحقق حالا نخواد فاسد بشی یا نه اون مهمی اثر مال اونه این مطلب رو استاد از کجا گرفتن در که در بحث قبلی نبشن در قبلی. این مطلب رو حالایی داره یواشاش معروض میشه که مشکل کار کجا شده و این زرافت های تقریه که ما همی جرسه میگیم اون فقیه حقال فقیه زرافته که معلوم بشه مرموم شیخ انساری مرموم استاد و دیگران اینا نکته اصلی نظرشون چی بوده که اینو در باب صدایی گرسن کرام استاد این بود که خوندی البته ایشون بعد ایک بحث دیگر در مطرح کردم اون بحثم الان من اشاره میکنم بعد وارد تحلیل خودی این بحث میشن. این بحث اینه که ایشون در سابقا میگفتن که اصل عدم این هبه سیعت لكن اصالت و سحه مقدمه و ربما یقال به تقدیم اساس سحه علی اصول موضع اساس سحه معید با جناب قاضی قابزه له حکومت ها چون حکومت داره ففي باب المعاملات على و مقدمه وفيه ایشون فرمودند مدرك اساس صحت اجماع است و بنا که ما عرف و هم ما من العدله که چون لبی هستند در نهل قدر و هو ما كان دعوا امر واحدن یعنی مثلا هر دو بگن حدیه صحیح ای اینجا اساس جاریه. اما یکی میگه اجاره فاصله که یکی میگه هبه سریعه اینجا دیگه از حاصل میشه نمیشه معلومن لطرف این للمترافه بل... این و کامل اختلاف خصوصیات و قصفر از ناانن المقام لیزه که داده چون یکی میگه اجاره فاصله البته اینجا ممکن است یکی اقل مشترکه هر دو میگن اقل یکی میگه هبه سریعه لیکن این اشتراک درده میخوره خیلی دوره بوده. یعنی به اصطلاح نوعی میخواد نه جنسی جنس هم کافی نیست الان که ما کار این خلاصه ای کلام استاد پس یک مطلب این است که اصالات سه مرحوم شیخ در اول فران احتمال انهو کذاله یعنی مرحوم شیخ اصالات سهه به جاری در پس یک مطلب تا این مطلب اساسی در اینجا در, اینجا در اینجا دو سوشیده یک آیا ما نهنفی از باب تدائی که مرحوم شیخ روی کمال و استاد اون رو به این لغت اجمالی تعریض میکنه شیخ نمیگه اشتباه استاد میگه یک اصل جاری میشه کیشه نمیشه چون اسابت عدم کونه ها اجراتن فاصله اثر نداره چون اثر نداره جاری به خلاف اسابت عدم کونه ها هیبتن صحیحه اون اثر داره چون اگه عدم اسابت عدم میگه تو ضامن پس اون جاری میشه اون یکی جاری نمیشه بله این طورم کلمشون مجمله اصلا خدمتون که این بحث که دیروز هم مطرح کردیم، این حده سعیه اصل عدمشه من همه روانی که استاد استاد هستن من همه آموزعی آیی روانی قدس الله نفسه این بحث رو که اصل عدم اون اول اون آقا این تو بحث قبلی هم داره اونجا هم گفته لا حسن. ظاهرا مرموم استاد هم اینجا هم متأثره با استادشون شده مرموم ایروانی اینجا به این تأدیر سریح نداره شبیه این تأدیر اینجا هم داره یعنی شبیه مرموم ایروانی این بحث اینجا داره که اصال از عدم و کونه ها اجازتا فاسده جاری نمیشه چون اثر نداره و هم احتمال میدم که استاد خیلی بزرگواره احتمال کلمات هیجروانی رو که در بحث قبلی و اینجا دیدیم در ذهن مبارک ایشون تاثیر گذاشه حالا این نکته چیه نکته فنی چیه که اینجا ممکن نمیدونن اصلا عبارات قبلی استاد هم همون توجه نشده نکته پنیش اینه اینکه خیلی ظریفه این از که ما چرا اصالت عدم کمالی اجارات فاسد رو جاری نمیدونیم اون نقصه شی این آقایان مثل مربون شیف مثل مربونی روانی قاهده عللیت رو قبول دارن زرافت نقصه ترقب بگم چون قاهده عللیت رو قبول دارن میگن موجب زمان هست نه, نه زمان موجب زمان هست موجب زمان یده دیگه اصالت هردم کنگیه ای اجارت هم فاسد چه داره چون اگر اثبات کرد که اجاره فاسده نبوده ببینید چرا حالا نقطه فنی چیه چون اگر گفت اجاره فاسد دقیقه اون خیلی ذرافت لطیفه یعنی اینقدر مطلب ذریفه که بر مرمومشه خودیگران خفی کنه. اون نقطه اینه که اگر اجاره فاسد شد یعنی میگه من اجاره فاسد میزنم چون اجاره فاسد میدونه زامن میدونه چون عقد اجاره زمان آوره عقد اجاره با عقد به زمان میاره از زمان معلوم ما منو به صحیحه یوز منو به فاسده اگر اجاره صحیح بود مثلا گروه های خونده اجاره دادم اجاره صحیح بود همون مرزاری که معیل کرده ما یه در ازاده ها زامن بازه ده. اگر اجاره فاسد بود طرفین قبول دارن اجاره‌ده فاسد بوده یعنی من این خونه رو در اختیارش نگذاشتم ب عنوان اجاره نهایت اگر اجاره فاسد بود اجرت المثل باید بده. روشن شد؟ پس اگر اجاره صحیح بود یا اجاره فاسد بود ضامنه به قاعده مایوس منو به صحیحه یز منو به فاصله روشن شد چون عقد اجاره خود زمان آور مثل بگیر منافع دیگه منافع خونه رو با بده. اصلا یک س... یک سال تو خونه بوده. طرف این هم اتفاق دارن اجاره فاسده و اجاره ب... میگه خب من اجاره بدهم حالا اجاره فاسده شرایطی ما هستو تو باطونی یک سال بدی من مچه توی خونه هم میشه که. تو هم قبول داری اجاره بوده اجاره یعنی منافع رو با تو میشه بدی. مثلا بحثمون فاسد پابودن اجاره بوده در واقع ما اصلا قبول, قبول نیست. ها، زمان نداره؟ دقیق کردی؟ چون هبه از نیست که زمان نداره اجاره فاسده زمان داره نقصی پرشید اون دافع میگه اجاره فاسد بود پس طبق بول دافع قاضی زامنه چون اجاره فاسده زامن میشه قاضی خودش میگه هبه سهیت من ظالم نیستم دقیق میکنی نقصی نیتون نکسه باوشن شد پس اینی که شما میگین قاضی زامن هست یا نه بر میگرده به این دوتا دعوا. اگر بگیم اجاره پاسده که اون دافع میگه ایشون زامنه اگر بگیم حلی صحیحه ایشون زامنی نتیجه نتیجه, نتیجه. نتیجه. اگر تروید شد ما بین همان به اصالات و عدم که ها اجارتاً فاسده اصالات و عدم که اجارتاً فاسده اثبات میکنیم که ایشون زامن برسیم زامن نیست به اصالات و عدم که ها اجارتاً صحیحه اثبات میکنیم زامن چون اگر قالت صحیحه نبود من اجاره فاسده دادم یا من چی دادم یا من دساطه روی شدددم رشن فاسد زامن حتما زمان رو یا به رشن ثابت کنیم یا به اجای فاسده چرا مرحوم شیخ زمان رو با این ثابت نمیکنه چرا چون مرحوم شیخ قاعدیت رو قبول داره دقت دکنیم مرحوم شیخ و مرحومی روانی هر دوشون یک رو قبول دارن و رضا به نتیجه هرده قبول دارد که این آقا زامنه برها دیگه اصالت عدم کونیهی رشوتن به دردون آقا نمیخوره اصالت عدم کونیهی اجازم فاصله دردشون میخوره نکته پنیه من باشن شد نقطه پنیه که در ما آیا باب تدایی یا باب مدعی و منکر اینه که آیا ما زمان رو اینجا از چه راهی میخواییم ثابت بکنیم؟ آقای خویی میگه زمان رو ثابت میکنیم و اصالت و عدم کهونی هیه بطن صحیحه پس میشه اجاره فاصلی آرشوه خب سوال، آقا اصالت عدم کهونی هیه اجاره هم فاصله این نبیه زمان میکنه اون میگه باش, باش اجاره عدم و عصالت و عدم کهونی هیه اجاره هم فاصله درد میخواه چون برحال زمان هست به قاعده یک ما زمان رو ثابت کردیم ما چی میخواییم ناقل از زمان میخواییم ناقل از زمان عبارت از حبه سریه از زمان حبه سریه اما کسانی که میگن تداری میگن نه شما زمان رو چی جور ثابت کردیم اصل زمان جور ثابت کردیم شما اصل زمان رو با یک ثابت کردیم لذا آمال این گفتی یک مهرزه چون این ماره اون آقا بوده در دست این آقا قاعده یک مهرزه شک می آیا زامن هست یعنی هبه سعیه هست اگر هبه سعیه بود دیگه زامن نیست ما مخرج از زمان پیدا می کنیم اما بنابرای این قولی که ایشون بخواد قول دیگه چی میگه؟ میگه نه و نه اصل زمان مهرز شما از کجا زمان رو اثبات میکنیم؟ خب، به تعمل بکنید. شما از کجا زمان رو اثبات میکنیم؟ به چه نقطهی زمان رو اثبات میکنیم؟ شما باید بگیرم دیگه قاعد علیت ایچه میگه اصلا قاعده علیت جاری نمیشه وقتی ما قاعد علیت رو جاری نکردیم پس دلیلی بر زمان نداریم اون وقت میشه کلام این دو بزرگورت این دو دفر. یکیش میگه حده صحیحه بوده من زامن نیستم من زامن نیستم میگیم اصل عدم که اونها هستن صحیحه اون آقا میگه نه شما زامن هستید من زامن نیستم از اون طرف این آقا میگه من زامن نیستم چون اصل عدم که اونها هستن فاسده اینه که آقای خویفن ولی تو آرز عدم ترتیب الاسر یعنی ایشون در یک مقدمه مزمره قبول فرمودن که خدیت زمان میاره هم که فرمودن تدایی نیست تو ذهنیتشون اینه که اصل زمان مهرده به قاعدیت مهرده اما اگر ما قاعدیت رو قبول نشکنیم قاعدیت رو بزنیم کنام این آقا میگه من اجاره فاسده بوده میگیم اصل ادمه که اجاردن اجازم فاسده چون اجاره فاسده که باشه دامنه اصل، ادمه که اونها اجازم این آقا میگه حده سحیه هست میگیم اصل ادمه که اونها ادازم سحیه اون قاعده بود که در کار میومد آمد کار را در میکرد اگر کار نفصیل فندی و لذا ما اشکال و مرموم استاد اینه این لا آراض ایشون درست نیست ایشون کلام مرموم آقای ایروانی رو بردن بله ایرمانی شون رو جاری میدونه مرموم شیخ امسالی قاعدیت رو جاری میدونه به درست پس زمان ثابته ناقل از زمان میخواد اصل زمان ثابت شد دیگه نمیتونه این طرف بگه تو زامن نیستی چون هدف سعیه. آزین گفت تو زامن نیستی. خوب دقت کنی؟ تو زامن نیستی چون هبه... من زامن نیستم چون هدف سعی است. آذین تونگو من زامن نیستم. اون نیو بگه تو زامن نیستی اما من اسپاس بکنم خود قائلی از تو زامنی؟ خیلی زریفانیم. دقت خیلی بالایی است که مثل مردم استاد با جلالتی شعرشون. توجه نقرارید این مال همون که میگن فقر واقعا میگن فقر خط نظریه مدرک در فلسفه انسانو درگیر بار بیاره فکری در تپ شیعه ظرافت های انصاف در بعض از عقایق سنی من دیدم خیلی ظرافت های لطیفی به کار برده انصافا یک ظرافت ها که هر چی انسان میگه بالا مرحوم استاد من عمدنم چنین عبادتی کرد یک کفه قرفو قاضی علیا قبول نداریم ما حوال جمع نفرمونه اگر خواهده حلالی از قبول نکرده در اینجا باید برام برنم باب تدایی و تارول شیخت گفت من مورد تدایی عبارت شیخ هم شهرداده شدن و حاضر من مورد تدایی این روشن شد چرا چون اصالت و عدم و کهونی اجارتن فاصله میخواد که من زامن نیستم حاضرین گفت و عدم و کهونی اجارتن فاصله چرا شیخ میگه مورد تداهیمی؟ چون این اصالت کونی کمونی ایجادم پاسه جاری نمیشه تو چرا جاری نمیشه؟ چون این زامن علا کلهاده چون یده از قاعده ید هست زرافت کار روشن شد چون به قاعده ید قاضی زامنه ناقل از زمان میخوایی اما اگر شما قاعده ید را قبول نفرموزید پی زرافت و برد به او سرمولی هم شادی بزرگان چیزی گفت میگه ما خود خود داره قائدی اینی که شیخ میفرمائید رئیس بن مورد تداعی میخواد شیخ بگه فقط یه اصل جاری میشه اصل دوم جاری نمیشه لكن شیخ هم که فرود رئیس بن مورد تداعی یه زیربنای فکری داره تحلیل ما اون زیربنای فکری به هر حال ازفارت و عدم کونیه اجاره کن فاسدی جاری نمیشه چرا؟ چون شما میگیم من این اجاره فاسد رو اگه اجاره فاسدم بود زامنه قادم. باید زامن خواهد بود زامن بوده. دیگر که این اجاره فاسد نیست؟ میگیم ما فایده نداریم. چون در حال علیه میگه تو زامنه تو میخواد با ازفارت و عدم کونیه اجاره کن فاسدی؟ اثبات بکنه من زامن نیستم. خدای سلام. دیگه من زامن اجاره فاسد باشه زامن شیخ یا انا کل حالم تو زمان داری بخواد ازا تعلم کنی اجازه خاصه جاری بشه چه چرا انا کل حالم داری عدم و چرا چون و, و, و نه زمان نه نقل زمان نه عدم قوی اما دیگه چون اگر نبید روی... چون سنگیه که باشه اجازه همه چون حویه سریعه باشه زمان رو بر میداره زمان با چی آمد نه با عدد و خوبیه اجاره هم خواسته با علیت نداره چرا دیگه چون زمان آمد میخواد برداره میخواد بگه چون حویه سریعه بوده من زامن نیستم میگه علیه اصلا حویه با در سریعه پس زمانه که با علیت آمد خیلی زنیبا یکنه بگم بگم که سوالید از که ب توجه نشده یعنی شیخ هم به ذهنواره شیخ نمیت توجه نشده به همون ذهنیت فردی خودش مسلم گرفته چون قاعده علیت را قبول گرشه یعنی شیخ رسته دنبال یک اصلی که فقط یک جایی میشه و نفیه زمان میکنه اون اصل دیگری که اثبات زمان میکنه نگاه نگرشه چرا؟ چون قاعده علیت بودی زمانه اما حضرت استاد شو با شیخ نیستن با مرحوم ایروانی و استادشون موافقه نیستن پس ایشون زمان رو قبول نکردهن در اینجا زمان مندی زمان هر دو با اصلا با اصالت عدم کونه اداره خاصه زمان ثابت میشه با اثرات اعاده و کونیه اجاره تن حثه ثینه زمان میشه, از از زمان, میشه. زمان میشه با اون یکی زمان میشه ولی چه اش و تن هم واجاره تن فایده جاری بحث زمان این اثر یاری نمیشه نمیشه که اون, اون هست. اصلا مکتب دعوا هست ما علیت قبول نکنیم اگر علیت قبول کنیم فایده نداره زمان دیگه از اثرات اعاده و تن دنبال زمانی مال روشن شد این خوب دقت بکنید پس مرحوم شیخ میگه انصر از یک طرف جاری میشه و اون به طرف داخل آرست داره هم میپذر میدن اما قاضی قاضی میگه انصر عدم کونی اجازن فاصله پس من زامن نیستم چرا که اجازن فاصله باشه زامنم انصر عدم کونی به قاضی میگن این انصر جاری میشه چون اصاصلیت میگه تو زامنی قاید علیت میگه تو زامنی نم نکته ای خندی قرار است نظر می گیرید که امام مرجعیت هم نمی رسد اگر این ادعای قاضی رو سن یاد هم قبول بشی ما هنوز باز ما نه دلوان احمدی منطاوی اگر علیت را قبول کردیم که شیخ قبول کرده از مرحوم روانی حق با ایناست فقط یکی از اونجا رو است ما میدونیم از اجاره فاصله اگر موحبه سعیه رویم خودش نیکن اینجا دیگه قادیت نمیان دیگه جایی ازامه سعیه هستی اینجا نیم مگه درواز ثابت بشه اگه ما بکنیم با حسول درواز سابس بکنیم بله پس بنابراین قاضی میگه آقا اصل ادن و کونه های اجارت هم پس من زامن نیستم اون آقا میگه اصل ادن و کونه های بزن سعیه. پس تو زامن هستی اگر این جور شد میشه اگر اینجور شد میشه بالا تداریش چرا شیخ و ولیسه حالا من مورد تداریش هم حالا و استاد هم اونجور تحریف کرد شیخ مطلبش واضحه چون شیخ در ذهنیتش اینه که زمان علا کلاها نه هر قاضی قاضی پس قاضی نمیشوند هم از تو بکنه یعنی سالت ادمه کونی اجازت قاضی تأثیر نداره چون زمان هست. اما مرحوم استاد که اون علیدیه را قبول نکردن این تقریبا بیگمانه که باعث ایروانی هم در این جامعه باعث شابه رفت داره مرحوم استاد این مطلب رو آوردن میگن لا اثر لهم نه اینجا اثر داره چرا اثر لهم لا اثر لهم اگر شما علیدیه رو قبول بکنی شو گلیه قبول نکردی وقتی علیدیه رو قبول نکردی به چه دلیل شما میگه عصر آن را مکناهی بودن سعی زمان رو میخوایم با آن را مکناهی بودن سعی بردیم؟ اصلا زمانش رو صادق نکردیم. اصل زمان رو باید به هر حال میگه اجاره فاسد است. شوم گفتم عصر آن را مکناهی اجاره. زمان اونم میگه تو زمان هستی به خاطری که عصر آن را مکناهی بودن پس تو زمان هستی. پس انصاف قضیه مورد مانحنسی برمیگذر تدائی نه به باب مدعی و منکر دا روی مبنا اگر کسی قاعده یک رو قبول کرد هم باشه شد. جای قاعده ی مدعی و منکر اگر کسی قاعده عدلیت را قبول نشد برمگرده این خیلی بحث مزریف بود روش فکر بکنی چون میگم مثل مرموم استاد هم به ذرافت دست از ذهن و غارکشون هسته کلمات استادشون منشهه پس فنی این که تداری باشه نباشه قبول عدلیت و عدل و قبول عدلیت